بسم الله الجل نامنن ند آره يا, يا, يا, آره يا, يا, يا, آره يا, يا تا یا تيام ملكو الجل نامنن ند يا تا اجرنمن اللہ یا مجیب صبحون تا منو یا سبحان چه یا چه بروم تا یا چه يوم اجر جبر الله یوم جید تا لای اجل او من الله یوم دعا رو من به همین نفس میخونم نگران نباره اما تو هم که با من زمزمه کنی قشق میشه آره قول بله تو هم داری میگی یه دنیا یه دونی. گفتم که باید یه بشت بگو من نجات بده به اسماع الحسنا و یه حق داری قسم میگی پازه میگی تو منذعی یا با این اسما با این که منذع بعد من بیکس کس بی هیچی اومدم ازت نجات میخوام از این آتش اولا میگی میگه صبحانه یعنی ببخش تو منزهی صبحانه یا مسب سررا تا یا مقدر رو عجر نامم مننا یا مج صبحان ها ya <Sanly> baagi hajar naam allah le ya mujib subhanacha ya baago taulay cha ya chabbo hajar naam allah آجر نام من الله در يوم مجيد سبحان كه يا سعي دي تالي كه يا مولاي آجر نام من الله در يوم مجيد سبحان كه يا قريبو تالي كه يا حجب من الله يا مبدع، یا یا اجل نام من الله ريا مجيد یا كه يا قدیم تا ليت يا عظیم اجل نام من الله ريا مجيد سبحان يا كفورو تا ليت يا, يا شکورو اجل نام من الله شاه دو سال یچو شری اجل از بچه اینکه که دیشب اونجا بیست و دو ساله دیشب اومده امروز خوندیزی کردم ادرشم تو جا رسنا میگه رفتم باور میکنی مرگ در کمین جاه ماست یا میبینی امشب اومدی فردا شب زیر خاکی الله اکبر اجرنا من النار یا مدید خوشبال اونهای که تو مالم زون می بیرد خوشبال, که, خوشبال, که, خوشبال که با لب روز می بیرد خوشبال اونهای که با ذکر حسین می foreign foreign dogs. FM FM. Amen. Yeah. Yeah. Yeah. No. You are now. Yeah, yeah. How he che <laughs> chal Yakar bela mara آقا دلم الان کرد کربلا سو گوش میدی یا نه افتادها به کام دلم زهر میشود آقای ما گرزده و تشنه شهید شد سوالك يا مهید تا لیتا يا ممید اجلنا من النار یا مجیب سوالك يا شفید فراغت لیلو قال ايجاب كثير سوالچه ی معبود او تو چیا همه جزبه اولت الان گریه میکنید یه 20 بخونم براتین نفس ها سگی گذر خیش به کوی تو به آمد می لب تشنه سر حیوانی بر سرم خواهد که لویتو بیادم ام آمد راه سیراسی سختی آره همشه وقتی آب خواستی بخوری در من یه چند از این و بعد بخور آره میخوام به جایزه بدم یه خط جایزه شما آقام قبول میکنه آتشی آتشی در دل شب جلوه نمایی میکرد دختر سوخدم تو به یادم سوال چه يام جوابم جنا سبحانك صادق يا تالای تی آ سریعه، هجر نامنال نوری سبحان سبحان جلو من النور یا مجید سبحانك عجل الله من الله دیام مجید A min al-nar ya mudin Soba'laka ya Aasimah Ta'la'yta ya Qasim A min al-nar ya mudin Soba'laka ya Qaliyah یا مقنی اجر یا تاولای من الله یا مجیب سبحانك کافی تاولای یا اجرنا من یا مجید صبحانک یا مقدمو تا لیتا یا اجل اجرنا من یا مجید صبحانک ظاهر تا لیتا باتن اجرنا من یا جب اون چيو رجا او تاله چيو مرجا اجلنا من النور يا الله بابا حال چه یاد يا سبحانك يا حيو تاليت يا غيوب أجلنا من النار يا مجيد سبحانك يا واحد تاليت يا أحد أجلنا من النار يا مجيد سبحانك يا سيد تا لی تی آسمان اجنب نان ناریاب است سبان جی يا, يا دیرم سبحانک یا والی تالیت یا متوالی اجب نام نالی کن کلام بمانت بقیش مرداس احترام بمانت بقیش هر کس نوک جز... رندم جز... میدونم من چی میخونم هر کس جز... که جز... جز... زخم نیاز الی او زلف گرداش اومد انتقام به منت بغیا شمشیر ها تمام شد و ها تمام شد سنگ ها تمام بماند بقیه گویا هنوز باور زینب نمی شود سینه امام بمانت بقیه پیراحنی که فاتمه با دوخته در بین ازدهام بمانت بقیه حرف آخرت چیه میگم راحت شد از حسین همین که خیالشان شد نوبت خیام حسین صبحانک یا علی عجل من یا مج صبحان ک یابل تا ت یا ملا اجل ناماً ن یا مج صبحان ک یا اللار اور تا ت یا بارود اجل نامنا نار یا مج صبحان ک یا تالیت یا رافع اجل من نار یا مجید صبحانک یا مقصتو تالیت یا جامع اجل من نار یا مجید صبحانک یا معزو تالیت یا مذل اجل من نار یا مجید سبحانك يا حافظ توليت يا حفيظ اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قادر توليت يا مقتدر اجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عليم يا حليم اجل من اللار يا بجید سبه�unك یا هکبر تعالیت حکیم اجل من اللار يا بجید یا مانع اجل من اجل من تالیت یا نافع اجل نومن نار یا مجیب صبحانک یا مجیب تالیت یا حسیب اجل نومن نار یا مجیب صبحانک یا لطیف تالیت یا شریف عجب من النار رياض موجی سبحان كه يه ربو تا الله يه تياب من النار رياض موجی سبحان كه يه موجود تا الله يه من النار رياض موجی سبحانکه یا افوو تالیت یا منتقم یا منتقم امتقم لادای عالم امم سبحانکه یا افوو تالیت یا منتقم اجل اومنن صبحانک یا واسع تالیت یا موسع اجر نومن النار یا مجید صبحانک یا روف تالیت یا اتوف اجر نومن النار یا فرد یا اجرنا من النار یا مجید صبحانك یا مقید تعالیت یا محید اجرنا من النار یا مجید صبحانك یا وچیل یا اجل لو من النار یوم کی ہے سبحانکے یا بو بین سوالے چیا مبین سبحانکے یا بو بین سوالے چیا اجر نامنن ناره يا مجید یا مجید سبانکه یا بر رو تو آلیت یا بدو اجر نامنن ناره یا مجید سبانکه یا رشید و تو آلیت یا مرشد اجل نومن النار یا مجید سبحان که یا نور و تو یا منبر اجل نومن النار یا مجید سبحان که یا ناصر و تو یا تیا نوصر اجل نومن النار یا مجید سبحانك يا سبورم تواليت يا صابر اجلنا من الله يا مجيب سبحانك يا محسن تواليت يا منشا شب سجدا وابدا وجهك اجل من الله اليوم سبحانك يا سبحان تعالج يا, يا ديا اجل من النار يا تعالي تيا غياس أجلنا من النار يا مجيد سبحانك يا فاتر تعالي تيا حذر أجلنا من النار يا مجيد سبحانك يا والجمال تبارك يا ذو الجبروت والجلال سبحانك لا اله الا انت آل سبحان جن كنت من الظالمين فاستجبنا لك ونجينا من الانقام وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد ولي اجمل والحمد لله رب العالمين وحسن الله ونعم الوكيل بلا حول ولا قوه الا بالله بالله العلي العظيم تبیان دادن هست کنجینی